فصل هشت امام محمد باقر علیه السلام ربایی در مده امام باقر علیه السلام بسیار کم است هرچه شاعر داریم کمتر از آن بیت موثر داریم باید بشود به وصف او عالم شعر وقتی که امام علم باغر داریم در مده و ولادت حضرت باغر علیه السلام آمده در ابتدای ما ما حال دنیا از وجودش رو برا خانه دوم علی شد غرق نور در شب میلاد این نوزاد شاه آمدان که می شکافت علم را آن در تورات دادندش گوا شکر خالق بر لبش زین العباد میکند کند سی را نگاه شد رجب با مولد او ماه عشق شیعه امشب از خدا حاجت بخوا قطعا امشب حضرت پروردگار یمن این میلاد میبخشد گناه هر کسی بی حب به اولاد علی مطمئن میشود عمرش تباه